سهرم حاسف میخانه به دولت های چارسد آفتاد نوم خیلی به دولت خواهی که این درگاه همچون جمع روحه ما کشت که دو جهان تکتوب جام آگاه بردر میچه درندان خلندر باشند سینه و دهن افسر شاهنشاهی پرشت دیدسر و شش دیدسر و بر تارک هفت دختر باز دست قدرت دست قدرت نگر و سر ما بودر که طرف بامش به فلک بر شد و دیوار بدیم وقتی اون مرحله هم مکن ظلمات است، بترس از خطر براغی اگر از سنطورت فقر و یک دل کمترین ملکه تو از ما بود تا ماضی تو دم فقر ندانی، تو دم فقر ندانی زدن تو دم, ندانی زدن. تو دم ندانی زدن از دست مده. ندانی زدن. از دست مده. ماستقه اوجیگی و مجلس صندوق شاهی حافظ ارمه حافظه خامنه حافظه شرمی از این شرمی از اون قصبه داد عمل از, از چیست که بود دو او جهان من قابلیت بسیار वंदे <تصفح> <تصفح> روتی میخونم غزل و بعدم میگم غزل خیلی در جاو اولی سمت از بهترین غزلهای خواجه سهرم حافظ میخانه به دولت خواهی گفت باز که دیرینه این درگاهی همچو جم جرعه ما کش ز سر دو جهان پرتو جام بین دهدت آگاهی بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر سر شاهنشاهی خیش زیر سر و فرطارک هفت افتر پا دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی سر ما و در میخانه به طرف بامش به فلک فر شد و دیوار به دین کوتاهی قطع این مرحله بی همراهی خیزر مکن ظلمات است به از خطر گمراهی اگر از سلطنت فقر ببخشند دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی تو دم فقر ندانی زدن از دست مده مصند خارجی و مجلس تورانشاهی حافظ خام تمام شرمی از این گسته را چیز که مزدشت و جهانی خواهد هر خوشم میزنه بعدم خودش خود ملامت هم میزنه غزل چند که ملاحظه این فهمید خطاب است به جلال دین تورانشاه که خیلی از غزلهای حافظ کتابه به این وزیر این وزیر با اینکه شاه داره آخره اسمش وزیره و وزیر شاه شجاعه خیلی هم وزیر سمیمی خوبی بوده یه بارم به زندان افتاده ولی شاه شجاعه به دلیل درایتی که داشته متوجه شده یه سیدی بوده اه. کاغذی جعل میکنه ظاهرا به خط تورانشاه ای به شاه محمود و فرادر شاهشو جا که من همچین میکنم میام و چی کار میکنم از این حرفا و میدن دست کسی که بره حتما گیر میوفته و او گیر میافته و نهاری گیر میارن و میخونن و میگنن بله برد دورانشا رو میگیرن و میکنن این زندان رو باید جا حالا یا تلهام شده باید هم چیز به هر حال فکر میکنه که دورانشا نپاید کاری کرده باشه و در رستگاه سلطنت شاش چیزی کم و کست نداشتی که بخواد بری اونجا پیدا بکنه این است که تحقیقاتی میکنن و یه مرد جعالی رو گیر میارن و میارن و میگن این روزا تو کردی؟ برای کی نام نوشتی؟ چجوری نوشتی؟ اختوالا یه لامه از زبون تو رانشا نوشتن بریم میکرد چندی کرده و کی گفته؟ طرف رو بیده می و مجازات می‌رسونند و دورانشا بر به مسند چیزش اون قزل اونسا نهت شبه آبسته گربستان را می‌رسد مجده گل بل بل خوش الهان را میگه ماه کنانی من مسندم سام تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان دار باز خطاب شاید شجاید به تورانشاید <تصفح> در هر حال جالکین تورانشاید بسیار ظاهراً <تصفح> ش... شناس بوده و قدر شعر خاجره نیدونسته و خاجره هم خیلی درجی یک کیلو به اسم کرده ایکی <تصفح> یکی از غذابی که ظاهراً خطاب جلال پرانشاست دوزه خلده برین دوزه خلده برین خلوت دربیشان مایه مختشمی خدمت دربیشان این میگه من گلام نظر آصف اهدم کورا صورت خارجی و سیگت دربیشان او هم ظاهراً همین پرانشا به هر حال این خطاب اینه و این کار جعلم در ذهن شما بگم که در تمام عدوار وجود داشته شاید در تمام دنیا و هر حال من اینو میدونم در دوره احمدچا یه مرد بسیار بسیار فاضل درجه اولی بوده عالم فازل به نام صد رول افازل. این صدر معلم احمد شا و چند تا پسر داشته همه جزه هنرمندان تراز اول و چند تا از اینا کارشون این بوده که هر بزرگی حکیم شاعر شاه وزیر که خطی ازش در دست بوده آسونی یه رساله به خطومی نوشتن راحت و کاغذ های رو میگرفتن کتاب های 700 سال پیش 600 سال پیش کتاب دعا رو مثلا با وقت که قیمت نداشتی ارزشی نداشتی با وسایلی که در دست داشتن اینا رو ترتیب میدهدن میشستن و بعد با هم خطی می‌خواستن می‌نور از شاه‌براینا یه روایات خیام که نوشته بودن و فروختن و بعد هم روسا از هول حلیم تو دیگ افتادن و این روایات رو چاپ کردن عین خود اون کتابم چاپ کردم و یه بابایی هم در فرانسه اونو به عنوان قدیمترین نسای روایاتی در دست اینا چاپ کرد حالا من اسم اون بابایی یادم نیست ولی جزء آدمایی هم بود که در فرانسه خوشنام نبود به دلیلی که با آلمان ها همکاری کردم اینا یه چیزه سیام خیلی قشنگی چاپ کرده بود وقتی من بیستی سالم و بعد آقای همایی فرمودن به من که روایای مسلم و صدور فخرالدین عراقی که این مجموعه هست در صورتی که برتر تاریخی که تا این روایات هست اون روز فخرالدین عراقی از مادر زاییده نشده اینا موقع جهل و تذویر یه همچین گرفتاریایی پیدا می‌کنن یعنی یه چیزایی از دستشون در میره که به همین واسه میافته یه کار اومده دیگری که کردن که یه دامان یک کسی هم اینجا گرفت یک کتاب قابوسنامه نوشتن قابوسنامه و این کهنه 900 سال 800 سال 900 سال بعد نقاشی که اصلا نقاشی ما از اونوقت نداریم در دست قدیمترین نقاشی هایی که در دست داریم ما ملقرن هفته همهشتون اصلا نقاشی نداریم نقاشی های عجیب و غریبی این تو بعد این صفحات که روهم مونده از پستی مونده این مرکب این بری رو بری پس داده محکوس اینا خیلی کتاب اصلی دشنگ ارز کنم که اینه به دعویززار دلار یا بیشتر نمیدونم پنچهززار دلار. تا آقای ریشارد فرای که استاد قاورشناس بود و توی اون محسسه ی کابر امریکایی در شیراز بود یه مدتی اونجا استاد بود بعد آمد یه مدتی هم استاد هاروارد بود و پارسیر هم روان و خوب حرف میزد به این فروخت به این فروختن و اینم زوغ برداشت اینجا آورد و مرهوم مینووی یه مقاله نوشت به نام تمرینی در فن تزبیر شناسی و اونجا ثابت کرد البته اطلاعاتش هم اطلاعات مربوط رو کس دیگری به مینوی داده بود ولی اونجا ثابت کرد که این قابوسنامه نمیتواند قبل از منتشر شدن جلد سوم بوم ملکو ملک و نوشته شده باشه. دلیلش این است که ملک و در موقع خوندن خط پهلوی گرفتاری اشتباهی شده دروغ رو خونده دستروب و کاتالوگ خیلی مشکل خوند. و این اشتباه علی فراهوس. اون بابام فرمولای پهلوی کتاب قدیمیه باید خیلی نزدیک باشه به پهلوی. اون روی این دستور اونجا به کار برده و معلوم شده که در دارم بعد کنم که یک تونه دیوان امیر مورزی هم فروختن به چندین هزار دلار. که بازم خیلی قدیمی بود و خیلی اثیر و اینا ولی بعد که آوردن تزهیب سرلوش رو دادن تیزیه کردن میدوند که آبیش بلود و پروسه که بلود و پروس در غیر نوزه ها اصلا کشف به وجود آمد و حال دوستان بودن و تا همین اباخرم میگفتن که کتاب اگر یک شب تو خونه فلانکست بمونه یکی از همپسرهای صدرالحفازل دیگه فاتحش رو باید خونه. و این کتاب دیگه کتاب نیست و همینجور میگفتن آبلیمون شیراز اگه میاد یه شرک اصفاهم بمونه دیگه دیگه به درد بیشون خوره و عرض کنم که این کار جلب تذویر همیشه بوده هزار بازی داشتن که اینا مقدار زیاد چند منعکس تازه نشدی توی کتاب هم پراوون، یک کتاب بسیار جالب توجهی هست به نام معالمال غربه بی احکام الحسبه بر احکام محتسیبی این رو ابن اخوه نوشته در قرن امام هفتم یا هشتم و دوست عزیز من دکر جعفر شعار این ترجمه کرده فارسی تحت عنوان آین شهر دادی و اون وقت مقررات این که شهر و اینا چجوری باید منظم بشه صده معبر نکنن چه بکنن کم نفروشن این سنگاشون رستگی بکنن چه چه هست یک پسجم تقلب در مواد قصد و تا دارد بخواه ها دا دارد بخواه اما یه نقطه که خود شخصم بنده برخوردم این است که یه روزی مرحوم دکتر راجی حالا اینا یه شرفتی حافظم نداره هم دکتر راجی وزیر بهداری بود یه سخنرانی کرد در مجلس سنا راجب انواع تقلباتی در مواد قضایی در زمن اینا گفت یکی از تقلقاتشو همینه که گوشت رون گاب رو می‌گیرن، میپزن و این ریشتیشه دیگه خیلی از اولادش میپزن و کات میکنن مثلا اینقدیر این ریشتیش ها رو میزنن تو آفتاب خوش میشه بعد با زعفرون رنگش میکنن میزنن با تو زعفرون یه مسخال میشه تو اینو دوتر و پنجه تا مسئله دیگه بعد من دیوان خاقانی میخوندن رسیدن به این بیت هر جا که نوگلیست خسی هم حریف اوست آریز گوشت داب و بار زعفه <تصفيق> <تصفيق> یعنی دوره خاقانی این و اصل شده بوده حالا دویدین چقدر دیگه این دوام داشته این کار و دا ادامه داشته نه اصلا دا پشت به پشت منحان عرض میرسیده به کسبی محترم هرم حاطف میخانه دولت خواهی گفت بازار که دیرینه این درگاه میخانه اشقه حافظ میخانهش میخانه اشقه حاطف بیشتر در عربستان معموله در عربستان صحرای صافه و صدا خیلی پیش میره به کوه ها اینا نمیخوره که برگرده بونه بنابراین بسیار اتفاق میابسی که یکی کسی صدا بکنه بوینده معلوم نباشه ولی صدا شنیده بشه این رو میگن حاطب و الان تلفن رو ترجمه عربیش کردن حاطف حاطف در عربستان سعودی در مکه جتو نه تلفن به هر حال حاطف, حاطف میخانه یعنی اون ندادهنده از طرف میخانه به دولت خواهی یعنی برای رعایت خاطر من و برای دولت من گفت بازار که دیرینه این درگاه این یعنی تو که اینجا قدیمی هستی برگرد همچون جمع چورے ما کش که ز ستره جهان پرتوے جام جهان بین به حدت آگاهی این مسئله جام جهان بین که بارها اینجا گفتگو شده ازش گفتم که جام کیخوز روه و بعد به مناسبت تناسب لفظی جام و جم این شده جام جم و جامی کیخوز روه قصهش در داستان بی جنمنیجه است و اونجا میگوید که وقت نوروز فقط میتوانسته موقعی که آساب در اعتدار رفعی قرار میگرفته میتوانسته شاه اگر بخواد اون جام رو بعد به نحوی که فردوسی شعرنده اون جام رو پر از می می‌کرده یک بار و دو بار می‌خورد بعد از نیایش اول نیایش می‌کرده بعد می‌اومد و بعد اون جام رو که دو بار پر می‌کرده می‌خورد و بعد گویا جام رو پر میکرده می و در او نگاه می‌کرده تا اونچه لازم داشته و اونچه می‌خواسته می‌دید و فردوسی میگه که کی خستو و همین ترتیب فیژن رو در چاه احساسیاب دید و روتن و فریستاد برای آاد کرد. این است که جام آلمبین و جام جهان بینو نه همه توی توی حافظ انوا اقسام ترکیببات داره که اگر بخواین اون کتابن به من همه شو در بیارم الان جام جمعه و ارز کنم که جام کیخستروه و جام کیخستروه هم هست که حافظ او یا خوبی بردی از توبان شاد باش. جام کیخستروه طلب کفراسی آونده ارز کنم که هم 162 بار آمده جام خالی ارز کنم که جام مرسع جام جهانبین ارز کنم که جام جم جام آلمبین ارز کنم که جام کیخسترو و همین چیزا جدا نکرده از هم متاسف کنه که من ببینم و لازم نیست که هر ساده شستو بارم هنچورتون بخونم و هر حال انواع اقسام تعبیرات رو برای این جام که بعدها اصلا به کلی مالکیت از چندی که خود خارج شده، افتاد دست جمشید، ارزش کنم که ترکیبات مختلف خواجه برد. همچون جام چریه مال که زر سر دو جهان پرتو جام جهان بین آگاه بر در میکده رندان گلندر باشم که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی و دنبال همین خش زیر سر و پر تارک هفتختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی این مسئله تو کتاب های تصوف و تو کتاب های احوالات مشارق تصوف بسیار بسیار زیاد میتونید ببینید که میگه گه فلان پیر دعا کرد تعیید کرد فلان پادشاه رو و او رفت و پیروز شد, شد و چه شد یا اینکه که نفرینش کرد یا حرف چیزی بهش و این رفت و کشته و چه شد پراون هست اما یه نمونه خیلی خیلی نزدیکش نزدیکم نیست نیست نسبتا قدیمیه نمونه ایست که مربوط به بابا تاهر اوریانه اول بار ذکر بابا تاهر در کتاب راحت و صدور راوندی آمده میگه که بابا طاهر در همدان در کوه الوند حالا همه خودش انقدر سرده که گربه شب زمسون بیاد سر دیوار میخواد رچه اون وسط خوش میشه بابا حالا اونجا توی قاری تو که علوان زندگی میکرده یه جایی به هر حال بعد میگه تغرل سلجوگی مؤسست و پایه گذار سلسل که خیلی هم قدرت پیدا کرد تا میدونید که ایران به بزرگترین مرزهای خودش در دوره سلاجغه در دوره ملکسا و البرسلان رسید از سیهون تا دریای مدیترانی از کنم که میگه توغرل رسید دمکو و الوان گفتن اینجوی پیر ساحت است و گفت میریم به زیادتش راه افتاد پروگه رفت دار تب بالا و بابا طایر مشغول نماز بود یا طاعت بود متوجه نشد نشست و تا وقتی که توشو کرد به او بعد سلام کرد <تصفح> بابا طایر بهش گفت ای ترک با بندگان خدا چه خواهی کرد گفت آنکه تو فرمایی گفت آن کن که خدای فرمایی انالله ها یعمرو بالعطل و احسان و یعنها عن الفحشاء ول منکر و یه مقدار یه حرف زد باید گفت یه حمتی همراه من کن یادگاری به من بده سر لوله لوله هنگش چونیست <تصحق> آفتابه سفالی بود سر لوله که شکسته بود اینو کرد تو انگوش تغرول گفت پادشاهی دو جهانو نگین پادچاهی دو جهان در انگشت تو کردن با خلق خدا مهربا این براحت و که در قرن ششم نوشته شد. و نظایرش گفتم خیلی زیاد. بنابراین این که میگه که بردر میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند از سر شاهنشاهی هم میگیرند و هم میدن. تاج شاهی رو این با وقت زیاد همه قلندران قلندران یه دستهی بودن که گروه اونا رو جز صوفیه اصلا نمیدونن گروهی هم اونا رو صوفی میدونن و هر حال اینا اصرار زیاد داشتن در خراب کردن ظاهر یعنی تظاهر کردن به اینکه چیزا توجهی به قاوه و اصول نداره. اولا تمام موهاشون رو میتراشیدن، حتی موی ابرو و مژه. سرها نه که سر به تراشاب گلندری دانند. دوم اینکه لباس سفید می و لباس سفید لباس روحانیان دین زرتشت. البته به دین زرتشت هم توجه نکرده‌ام. بعد هم یه حلقه آهنین به گردنشون بود و یه زنجیری آویز. و اینا بسیار بسیار وسعت مشرب داشتند. یعنی اینجوری که نوشته شده از هیچ منهی و منکری هم روگردان نبود. پاید هم به ظاهر بوده بعد اینکه دستی دیگری هم هستن به نام ملامتیه یه وقت من قصه اون یوسف اطنو حسین رازی رو اونجا گفتم براتون از تسکرات الالیا اینا هم ملامتیه هم یک میکردن که مردم اعتقادشون از اینا برگرد این و حال اینکه مردم رو و رو ظاهی دید برجت قلندرها یک گروهی بودن ادهی با اینا خوب نبودن ولی حافظ که نظرش به اینا نظر مساعد. دیگه رندان گلندری بر در می‌کده اصلا که تاج و ستت می‌کنن تاج شاهنشاهی. کلمه افسر قسمت دومش سره اون آ پیشاوند در اوستایی هست اوی اوی سر اوی به معنی بالای اوی سر عوی یعنی چیزی میذارن روی سر بالای سر به معنی تاج و کلمه افسار هم درست از همین که اون افسار هم برای از روی سرش راید میشه اوی سار عوی شده افسار ولی به هیچ وجه این افسر با کلمه آفسر انگلیسی یا اوفیسیه فرانسه هیچ ارتباطی نداره و بنابراین صاحب منصب رو که صاحب درجه رو که ترجمه کرد به افسر مرحوم فردابود اصداد ما خیلی از این ترجمه دلخور بود من امیشه میگفت صاحب منصب میگفت آهای آه صاحب منصب نمیگفت افسر نمیگفت کنم که افسر هم تاج. بردر میکده رندان قرندر باشند که ستانند دو دهن دفتر شاهنشاهی خشت زیر سرو بر تارک هفت دفتر خال خشت کسی که چیز نداره خشت میذاره سرش ولی این یک اشاره لطیف دیگر هم هست مرده وقتی مرد میخواب منش گور خشت میذارن زیر سرش و مرده که مرده کسی است که به کلی از عالم هستی 100 درصد چش شده. بنابراین حافظ که اشاره میکنه که اینا خش زیر سرشونه یعنی اینا از نظر تعلق به دنیای مادی عین مرده به کلی این دنیا براشون وجود نداره. به همین دلیلم هم میتونن پاشونو بزنن بر تارک هفت افتخار. خشت زیر سر و بر تارک هفت دفتر پای دست قدرت نگرو یکی از معنی دست خودش قدرت وقتی میگرم خلعیت کردن از پلانکست این اصطلاح در موقع مهلی شدن نه خیلی معطره بود خلعیت کردن از شرکت نفت یعنی تسلط و قدرت انگلیس رو کوتاه کردن از دستگاه شرکت نفت این ید ببینی یه منشید صد تومانی داره یک شنگ است قدرت نگر و منصب صاحب جاهی روشن سر ما و در میخان یعنی سر ما و در میخانه باد همیشه که طرف بامش به فلک برشد و دیوار بدین کتابی دیگه از نظر معنا بام این از افلاف گذاشته ولی دیوارش تون میکده همیشه جاهای پست و کتاب اینا بوده در نسخه های گست به فلک برشده اگه برشده باشه ما باید بخونی دیوار بدین کتاب چون رس هست به فلک برشده شده دیوار خود ولی بگیم به فلک و دیگه نمیشه باید بگیم به فلک و دیوار بدیم خود از این مرحله بی همراهی خزر مکن چند بار خزر رو گفتم نیستیم که بازم مجبورم بگم خزر پریاد مردم نرسه در و کنیش عبالعباسه و خیزر بهش میگن برای این میگن از هر جو که از جزی رفاش سطح, سطح میشه و راه نماست راه نمای است که حافظ راه نما و دلیل راه و رهبر رو میگه خیزر راه گذار بر ظلمات است خیزر راهی خوب ما با خاختش محرومی آب ما ببرند اون قصه اسکندر است و اون داستانه ولی در مورد تصوف مدت های مدید بوده. از هم قرن های اول و دوم کم کم او یا دوستانی که دلشون سودای رهبری و شیحی و پیری و بزرگتری و نهرفا رو بساطن کردن و مرید داشتن در دلشون بوده کم کم این فکر رو وارد ذهرها می که امکان نداره کسی راه تصبح و راه سری و رو بدون دختری پیر انجام بده و این رو خیلی بازحافظ میگه به راه من دلیل راه قدم که من به خیش نمودم صد اقتمام نشون نزایرش خیلی زیادی که لازم نیست من بیشتری داریم با بره. و علتش این هست که میگوین تیر این راه رو رفته و از مخاوفت و محالک این راه و مزایق و تنگناه که داره کاملا آگاهه به این دلیل سالک باید خودشو بسپره دست او و او به نهبی که سلام میدونه و به نهبی که او بینای بیماری های روحی این ساله که به خصوص هم هست چون بنده مثلا خیلی پول دوست دارم آقای نو ممکنه خیلی مقام دوست داشته باشه آقای ایکس ممکنه خیلی زن دوست داشته باشه مثلا، اینا روش تربیتشون فرق میکنه و پیر اینا رو میدونه این است که میگویند که باید کسی که این راه رو رفته این با به دردهای درمونی مورید هم آشنایی داره آدم اختیار شده دست او تا او آدم رو منقصد پرس اینه که میگه قطع این مرحله بی همراهی فیض مکن ظلمات است. به ترس از خطر کنگاه برای اینکه اگر پیر نباشه گمراه با. اگر از سلطنت فقر به ای دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ما اگر واقعا تو بتونی با اون فقر برسی یعنی طوری باشه که از هر چیزی که رنگ تعلق به فضیره به قول خدا حافظ آزاد. این محصود این نیست که در بازار نری خرید و فروش نکنی کار نکنی فول نداشته باشی معامله نکنی لباس خوب نکنی ابدا ابدا این مطلب نیست همه این کار رو میتونی بکنی ولی دلت با خدا باشی و هیچمونه تعلق و خاطری به اینا نداشته باشی من یه بار یه ای رو البته به سه رویا گفتم ولی چون خیلی قدیم گفتم دوباره تکرارش میکنم گفتن که یه مردی بود یه مرد درویشی بود و گرد شهرهای مختلف میگشت و سراغ میگرفت که رجال و مردان خدا کجا هستن و میرفت سراغ اینا به خودش خدمت مردان میکرد تا برسه مثلا به کمال بعد چنین که درویشی در, در این شهر دور هستید خیلی دور در اونجا هست چنین کمال داره چنین میمیدونم رسیده هست واصله چنینه چنانه راه افتاد و با رنج بسیار رو رفت اونجا شهر تراغ خونه آقا رو گرفت راه کردن رفت رسیدیدی قصدی اونجاست نوتر رو درگون رو بیا و برو فکر اشتباه میکنه تا کو قونی آقای بوغعلیشاه اینجاست گفتن بله بفهمین تا تور گفتن بفهمین رفتن تو بفرمی؟ بفرمی؟ از این در به اون در از این راه رو به اون راه رو از این گالری به اون گالری از این اتاق به اون اتاق از اون اتاق به اون اتاق همه مخروش همه منظم همه مرتب تا بردن در این اتاق و بسیار آبرومندی رو گفتن بفهمینجا آقا هلون. درویشم هم از همون بیرون دلی خوره انکار بود که اینجور درویش درویشم ما تازه داریم می‌بینیم. این هم شد درویش با این دستگاه و نا نشسته نشسته بود آقا تشکر آقا هم خیلی آقای منظم مرتب لباس فعیلی مرتب پوشیده از شان که خیلی موجه و درست حسابی اومدن و سلام علیکم علیک و درویش رو به خیر و حالت چطورو راه به تو چه جوز گذشت از تفر ناداحتی که نکشتی بعد از چیزهای مقدماتی تا حالا اینم هیش فکر میکنی این درگیش گفت تو این شهر ما رو هیچ دیدی خب نه من از راه که اومدم خدمت شما. اومدم خدمت شما برسم خب پس اولین وظیفه من اینه که تو رو ببرم این شهر بگی شهر بگی گفت رفتن بیرون رو آقا را افتاد و شروع کرد که این خیابون فلانه، این میدون فلانه، این فلانه رفتن رفتن رسیم دروزه فلانه بعد این دروزه مثلا بعد فرض فرماتی که اینجا ترون بوده بعد گفته که اینم دروزه مثلا خوراسونه و از این را میرن به بخارا حالا بخارا کجاست؟ آه من مثلا در بخارا هم یه پشمالیشایی هست که باید ببینمش خیلی دلم میخواست که دلم زیارت کنم میدم. آقا گفت که منم خیلی دلم میخواد اتفاقا است که هوای زیارت ایشونو در دل دارم اگه موافقی یه ترتیب بدین گفت بله آقا من موافقم کاملا بخوا خب بریم دربیش گفتش که خیلی ببخشین آقا من اون منتشا و اون و دولت منظر شما جا گذاشتم یه پنج فرزه بفرمین یه سرفا بریم اونجا و این پوستخت این رو بردارم بریم بخوا مردی که تو پوست و اون منتشا تو میشه بودشتی. من اون قصر و اون دستگاه سلطنت تو اونجا جا گذاشتم با تو اومدم رفتم یک کلمه حرفشو نزددم تو اینقدر نتونستی چیز کنی که این دوری این پوستخت و بعد ایرادم میگیری به مردان خدا حالا واقعا مسئله اینه که این آدم براش اون مسائل مطرح نبوده اون درویش اون پوستکاره و اون منتشاش خیلی ارزش منتر یعنی بیشتر دل بستگی داشته به اون تا اون آقا و اون قصرش این درست نیست به این که میگی که خیلی سیره سر و برطارو که هفتخترفای اینه بس فلطنت فقر اینه که آدم هر چی داشته باشه یا نداشته باشه براش ارزشی قائل نباشه اگر گرفتن ازش خمگین نشه اگر زیادتر شد خودشو گم نکنه در این صورت داره سرطنت فتر اگر از سرطنت فتر به بخشنده دل کمترین ملک تو از ماه بابر تا ماهی این کمترینشه نشه اگر نه که افلاک هم هست ماهی چنان که میدونید میگفتن که زمین روشافه گاوه گاوه هم رو پشت ماهیه ماهی هم تو دریا. این ماهی بعدا میگفتن که شمشیر فرانکست از،, از گاب و ماهی گذشت گاب و ماهی یعنی گاب و ماهی. بعد این خطاب تورانشاه یه تو همه فقر ندانی زدن دانستن به معنی طبانستن در همه دان یه فعل دارن تانستن تانستن صورت دیگری از دانستن یعنی هر دوش نمیتانم که میگه یعنی هم نمیدانم هم نمیتوانم تو دم فقر ندانی زدن یعنی نتوانی زدن حافظ در یه بیت دیگری میگه که ای که از دفتر عقل آیت آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست ندانی دانست یعنی نتوانی دانست تو دم فقر ندانی زدن از دست مد مسند خارجی و مجلس تورا چاکی میگه نه کارت تو کارت این نیست تو کارت اونه همونجا رو نگه دار و بعدم میگه که تو که سیرت دربیشان داری یه لازم نیست هموقت کافیه مسند یه دو به بوده دو چلوب اندازه ای که روش می نشستن وزیر یا باز هر کسی این ها هر ساعت مقامی یه دونه محصنت داشته که میزشتن مینشسته اون رو یه دونه میز هم جلوش بوده که بنده نیمت فرندی شده که اونم بشید مختن دست دست وزارت بد خاجیگی و مجلس تورانچاهی حفظ خامتم شرمی از این قصه بده بعد این که حرفا میزنه و به توران هم میگه نه تو چیز نیسی بعد یه خودت چی کاره ای؟ حافظ کن این حرفا رو تو چیکار کردی اصلا؟ عملت چیز که مزدشت تو جهان کاری اینم هم این غزل غزل چارسد و هشت غزل خیلی تریشی کسی داخت درست بخونیم؟ باحت درست رفون می خواهد از دسته بودی که مردان رخ تا و مرتبه می تا که عشق و ذر شدید ماب و خورت مرتبه خویش بود کرد آن دخل سیر خویش که بیر خود شدید گر نور عشق حق در به گر نور عشق حق به جا رفید در بله قضا و سار و فلک بود دکتم قریب بحر خدا شد تومان من مبر که از آب هفت به نیت تر شدید. از پای تا سرت همه نیتر خدا شود در راق زلدلال دل شدید ها رو سر شدید بچه خدا اگرت بچه خدا اگر شودت منظر نظر این پس شکینمان نمان که صاحب نظر شدید امداد هستی تو جو دیوار شبد در در سال به بالا بود ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد تا راه رو نباشی کی را راه در مکتب حقایق پیش عدیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدر شدید دست از مثل وجود چون مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شد خواب و خورت مرتبه خیش توف کرد آنگه رسی به خیش که بی خواب و پر شد گر نور عشق حق که دل و جان توف در بله که از آفتا به فلک خوبتر شد یک دم غریب به بهر خدا شد گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی شد. از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه زلجلال چو بی پا سر شد بچه خدا, اگر بچه خدا اگر شودت منظر نظر زین پس شکی نماند ساحت نظر شد بنیاد هست که تو چو زیر و زبر شود در دل مدار هیچ که دیگر بر شدید گر در سرت هوای وسال است حافظا باید که خواه که درگه اهل خونه شد خب میسید که یه ایزاره... کنم که این ای رو که ملاحظه میفرمایید با لباس سیادت نامی سبز این مقاله، بلکه یه رساله‌ای در شهست صفحه نوشتم که ظاهرش نقدیست بر کتاب حافظ آقای سایه ولی در حقیقت مقایسه کتاب سایه است با حافظ چاپ دکتر خانلری و حافظ چاپ معروم غزمی سه تا چاپ معتبر پنجا سال عقل. هم وقتی دست نویس بوده و, و از این این نسخه اینو گرفتم ولی این هی زیاد شده تجیه نظر شده تغییر کرده حتی وقتی پرسته شد تهران یه دور دیگه از تهران پس پرستادن با فست سری با یه مشه اظهار نظرهایی که من موافقم یا موافق نیستم بعضیش موافق بودم بعضیش موافق نبودم اون تغییراتم دادیم و مقدار زیادی مطالبش به هر حال عوض شده اینو یه دستایی در برکلی دستگاه اسکوای فتوکپی آقای ایرانی به نام مترو پابلیشینگ اینو کپی کرده و به ثمن یکی دو دلار نه دو من 200 دلار من نمیدونم چقدر به هر حال که تنها چیزی که از این بابت ما رسیده دو تا نسخه نظیری به ما دادن اونم دادیم به دوستانم اینی که من قیمت رو نمیم و قیمت دوست دلار و هر حال بیشتر نیست 6 این رو من دارم میگم اینجا که اگر میخوان هر کدوم از اتاف ها میخوان بگن آقای پل چون تشر میارم پ شنبه میان به بهی سفارش بدن به این آقای فریور که تهیه کنه و بیاره برای دوستان. در حقیقت هم بسیاری از مطالبی که راجبه اینکه این چره اینجوریه اونی که چره اینجوریه کلون بهتره کلون بدتره و استدلالاک شده اینا همه به صورت نوشته تو هست این از که من فکر میدارم کسانی که دونبال کارا حافظن بهتره که این مقاله رو بخون. حالا یک خودتون میدونیم و هرکی میخواد رو بده که ایشون ترکیبشو بدن و بگیرن. و همین ما هم چیزی دنبال کار نیستیم <تصفيق> بی خبر بکوش که صاحب خبر شد می بله دیگه آدم ها میان تو این دنیا یه عده روز که میان تا که میرن که این تفاوتیش نکرد اصلا و عوضا مثل که این دنیا در اطرافشون اصلا هیچ جور حس کنچکاوی اینا رو بر نمی انگیزی یه دیگری هم به عکس به محض اینکه چشنوا می کنن این چیه؟ اون چیه؟ این برای چیه؟ اون از کجا اومده؟ اون از کجا اومده؟ خب یه عده یه عده اونجوری هست حافظ میگه که انسان فرقش با سایر هیونات هم که بتونه خبر پیدا کنه از حقایب و یک چیزهایی بفهمه حقیقه آقا بشه که هیچی نفهمه که خب مثل یه هیوانی به دنیا اومده و مثل همه هیوان هم از دنیا رفته یعنی که میگه که سعی کن اولا ای بی خبر سعی کن که صاحب خبر بشی بعد تا خودت راه رو نری تا راه رو نباشی که ای راه برشبید. اگه میخوای در یه راهی مردم رو دلالت کنی و ببری باید اول خودتون راه رو رفته باشی و تنگناها و گرفتاریها و گردنها و مزایقش رو دیده باشی تا بعد بتونی که دیگرانم راه برید. در مکتب حقایق پیش عدیب عشق پان ایپسر بکوچ که روزی پدر شد عدیب رو صفت مشوه از مستار ادب در حقیقه ولی عدیب رو به معنی مربی و معلم هر دو چون یه معنی ادبم تربیت کردنه چنان که می‌دونیم یعنی راه و رسم چیزها رو به مردم یاد دادن که در هر جای ادب یعنی اینکه که بدونه در هر جای چه رفتاری داشت باشه چه جور رفتار بکنه این کار کار عدیب می‌گه در مکتب حقایق اولم می‌گه که حقیقت در عشقه کار عقل یعنی حقیقت باید به ذهن تو خودش تجلی بکنه تو فقط کاری که میکنی باید این آینه ذهن رو شفاف بکنی تا اون خودش به و الله پوشش تو در این راه به جایی نمیدسی میگه در مکتب حقایف کیش عدیب عشق پوشش بکن چرا؟ برای اینکه یه روزی پدر میشه پا پدر بشه دونو پدر باید بچهش رو تربیت کنه، باید بچهش رو رهبری کنه، تا خودش راه رو نرفته باشه چجوری میتونه بچهش رهبری کنه نمیتونه دست از مثل وجود تو مردان ره بشود تا کیمیای عشق یا بیگی شد آدمیزاد از یه جنبه درست هیوانه یعنی خور و خواب و خشم و شهوت رو ارز کنم که اشتها و چریدن رو ارز کنم که اینا داره یه مقدارم بیشتر از هیوان این مراحل هیوانی رو داره لباسشی کم دلش خونه خوشکلم دلش میخواد و همه این چیزهای مادی رو که بسیاری از این هیوانات هم در بندش نیستن انسان هست اینا در حقیقت همون مراحل حیبانی است این همون چیزی که به مقدار کم میشه قانه شد و گفتن که اگر کسی میخواد در طریق عشق و در طریق درک و فهم قدم بگذاره شرط اولش اینی کم بخوره. شرط دوبار میشه هم کم بخواه چون خور جز مظاهر حیبانی هر چقدر ممکنه باید از این پرهیز کرد برسه به بعد میگه این وجودتو انقدر لازم نیست عزیزش بداری هی واسهش پلوک درست کنی و چلوک درست کنی مربا بیاری و مرغ و مسمع و دائم به فکر این باشه که این تنور شکمو به تابی هر هرچه بهتر و شایسته تر و وسائل چریدن و فربه شدن این تن جسمانی رو فراهم کنیم. یکی یه خوب این این نظر بکنم. این مثل. این همون چیزیست که صد دفعه دیدی دست پاشو میگیرن. بیارن میکنش تو اون چاله بعدم پاک میزن روش. این چیزی تو انقدر عزت و اترامبش میذاری، این اونه. تو یه چیز دیگه هستی، تو اون نیستی. اون یه است که تو شخصیت تو سواره این مرکب رو اینقدر ازداد بهش نزادی یعنی و آدم اون مرکب مکن از این مثل دست بشوی، اون وقت کیمیای میرسه بهت و مثل تو رو تبدیل میکنه به ذر یعنی به مراحلی میرسی و به مدارجی میرسی که هیچ کدوم این عوامل مادی و جسمانی بود که ارزش عرضش ماده. و این واقعیت داره الان قصه تغرل رو داشتم میگفتم اون بابا تاهر اون بالا نشسته بوده سلطنت میکرده اون مرز که این همون دست از مثل وجود چون مردان رح شستن میدونسته که بابا تاهر هیچ یعنی تغرل میدونسته که بابا تاهر هیچ حاجتی بمونه ده اما او به دعای خیر و عطایر احتیاج داشت. این زر شدن اینه این مطلب رو سعدی هم داره میگه گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق در مسما میخت زر شده هست از مثل وجود تو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیا بی و زر شدید خواب و خورت ز مرتبه خیش تو کرد دیگه اگه, اگه نرسیدی به اونجا برای خوردن و خوابیدنی آنگه رسید به خیش که بی خواب و خور شدید وقت درسیم کندیم دیدیم که خب کارم بلیم نیکنیم کار اداری داشتون میکردیم خیلی هم کار شدیدی که هر ثانیه میخونون دانشگاه بود. هیچ وقت دیگه نمیشه. باید یه مقداری از خوابمون بزنیم. راه دیگه وجود نداره. عاوز که 8 ساعت بخوابم، 4 ساعت بخوابم. 4 ساعت همین کارم تخت. گاهی هم اتفاق میافتاد که دو شب سه شب نمیخوابیدین. این راه شبام پیده آرامتره و آزادتره و آدم که صاحبتره و بهتر می کار آنگه رسی به خیش خیش یعنی همون وجود معنوی تو نه اون وجود جسمانی که آخرش می کنه شون چاله آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوید برایه اینکه خواب و خور از مظاهر این تن خاکی است گر نور اشق حق که دل و جان و تو دد بله فلک شد این اینجا در حقیقت این مسئله هست اون این است که میگه که خداون ما رو خرف کرده یا بعدم دستور این کارو که این کار رو بکنیم این بکنی. کار رو قاعد هم گفته که بهشت یه از او جهنم یه از او جهنم مال آدم این کار نکن بهشت مال آدم های این کار رو, رو بکنن اینا یه ادیه میان های نماز میخونن و اینا رو میذارن تو حساب کفه سوابشون ما اینقدر از خدا طلبکاریم اینقدر دیگه از خدا طلبکاریم این رب بلا و روز پیامات هم منتظرن که اینا رو بیارن بذارن در حالی که این در حقیقت نوعی این معامله کردن با خداست با خدا که آدم معامله نمیکنه که. که تازه ترس دوزخ و بیمه بهش شدم از ترس دوزخ بیمه بهش کاری رو بکنه یا نکنه این هنری نکرده که چیز میگه سعدی میگه که سر گا و اثار از آن در که هست که از کنجه داشت ریسمان کوده از آن خور خورمه خورد گوزفند که قفل است بر تنگ خورمه و بند پس ترس جهنم گناه نکنی از به به هوای بهش در نمیم سواب کنی که آدم شدن نشد میگه باید چشم از همین را بخوشی تو فکر کنی که خالق تو قابل پرستشی قابل عشق ورزیدن کمال مطلقه، جمال مطلقه و اون چه نیگویند اهل تصدفترین باب دیگه وقتی اونطوری بشی اون وقت نور اشراق به دل و از آفتاب فلک رخشنده تک یک دم قریق به بهر خدا شد یک لحظه دیگه فنا شدن این راه فکر مکن دیگه بعد از این از آب هفته آب هفتری یا یک موی تو رو بتونه کنه. قدیم همه چی رو به هفت تحصیم میکندم که هفته افلین بوده و هفته هم بحث. از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه زلجلال جلال بی پاو سر شد باز این بی سر شدن به معنی دنیای مادی و مادیات رو به چیزی نگرفتن و بهش اهمیت ندادن. وجه خدا وجه یه معنیش روز در قرآن آمده ایدنما تو ولو و لو هر طرف رو کنین اونجا روی خداست. مشروط به چی؟ مشروط این که دلتون با خدا اگه اونطور باشه هر جا که روح کنی خدا هست و این که میگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر نه این است که خدا یه جایی هست که نیست یا تو نه نه تو نمیبینی اگه تو چشم تو آماده کردی که وجه خدا رو ببینی اون وقت معلومه که صاحب نظر زین پس شکی نماند صاحب نظر شد بنیاد هستی تو تو زیر و زبر شود این عالم هم آخرین عالم سیر و سروت عالم فناز همون نیست که اد از جند حسیننت به منصور حلاج که گفتترین در این ای من غیر از خدا هیچ نیست و محصولش این است که منصور حسینر به منصور وجود نداره. خناه شده اصلا تا با گفتند که شب موقع قصهش در مصنبی هستم پسید با یزید شب در زن، در اون حال جذبه اونا گفت سبحانی ما اعظم شهنیم ها کار که منم چقدر شهن من بزرگیم از دو صبح مریدا گفتند که قربان شما یه همچه هر بزده. وای بر جان بایزید اگر چنین حرفی زده بشن. اگر یه وقتی که چنین حرفی از دهن بایزید خارج شد، با کارت با خنجت بزنیدش بکشیدش شب دیگه شد یا شبهای دیگه و هر حال باز بایزید در حال جذبه رفت و این همین حرف رو زد مریداری خنک بزننش در روایت مستنویی و القهدت و علی خبتن که هر زخطی که بایزی بین زدن همون زخط و بدن خودشون پدید می آمد برای اینکه در میان نبود دیگه اینکه می گفت صبحانی ما اعظم و وقتی بوده که طریق به بحر فنای حق شده این اینمی که بنیاد هستیت تو چو زیر و بر شود در دل ما هیچ که دیگر شدی اگه چنین بشه دیگه بالاتر از اون هیچی نیست دیگه فکر نکن بالاتر از اون چیزی همست در سرت هوای وساله است حافظا با که خاک درگاه اهل هنر شد این هنر ما یک گرفتاری داریم در دوره تردوسی هنر به عنی جنگ آوری خوب نه یعنی مردانگی نیک نی مردانگی و به معنی هنر نزد ایرانیان است که یعنی خوب جنگ در دوره سعدی که میان میگه حکیمی پسران را پند همیداد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و, سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دوز به یک ببرد و یا خاجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لغمه چیند و سختی دید اینجا منظور سعدی از هنر که اوهدی هم در همون کار میگه هنر آموز که از هنر بندی در گشایی کنید و در بندی فر گرفتن یه فن نیست به هر حال و البته این فن هرچه شریفتر هم درآادش بیشتر و هم نامش می کوترطبیعی است که مثلا کل با جواهرسازی خب برق داره ولی اینجا که حافظ میگه که گرد در سر ات هوای و از حافظ ها باید که خاک درگر اهل هنر شدی این هنر به کلی باز یه چیز دیگه است یعنی همون اهل سایی بودی اجرا دیگه نداره دیگه است حالا من فرصت ندارم اینجا که چیز بکنم اون واجه نگاه کنم بینم چند بار کلمه هنر آمده و به چند محنی آمده بعد اون ان شاءالله نگاه می‌کنید و می‌بینید ولی به هر حال این این معنی هست. بعدم در ساعت ترفی آقای سپند اومده و من چه جدید هستن. و یه متأسف از این چیزایی که که من گفتم اینا اینا خبر ندارن و نمی‌دونن و گفتم خب پس بندم مثل و 84 که هر مستمعی که میومد روزاشو از سر می‌گیره <تصفيق> بنده هم روزم رو از سر بگیم قصه به حسین رازی رو گفتن که بعضی نمیدونن حالا میگیم تو بدونم این اولا در تسکت الالیه های عدتاره. و این یوسفت به حسین رازی از ملامتیگیه است یعنی آدم است که دستی دستی یک کاری کرده که مردم بهش اعتقاد پیدا نکنه و دورش جمع نشن برای اینکه اصبای در سرش بشه گفتن بایزید بعد از سالها برگشت به بستام ده خودش و خیلی مرد ناماوری شده بود و شهرتی بوده کرد مردم بستام او چی که وضعی آمدن به استخبارش هرچی بود و اصلا شهر خالی کردن آمدن به استخبارش عبیش میگه بکنتم خیلی پر جویزی بچردن بود بود دست که تو گروه بشید که نون درمو چوکه بخوردن اینا تا که که بایدید شوزشو میخوره گذاشتن از دورش پراکن دوشتن بعد به نفس خودش خطاب کرد گفتیدی چجوری تمبیت کردن این حرکت یا حرکت ملامتیست که در حقیقتی کاری میکنه که خلاف شهر هم نبوده مساخر بوده روزه نباید میگرفتن ولی توجه مردم به هر حال موسطقه دید یوسفید هم از این توجه بوده میگه مردی در نیشابور که آدم خیلی درست و حسابیه باست در یه اهل پرهیز از کنن که زندگی میکرده اونجا تاجه بوده کاسه بوده اینا برادری داشته برادرش میخواسته بره حج و از زنی داشته و حالا پچه هم داشته نداشته، و نداشته و نمی زن خوشگری داشته این زن رو دست برادر میگه برادر مثلا یه سال طول می کشته برن حج بیرن، طول می کشتید خیلی شاید هم گاهی برنم گشته دو غارب کرد میز پره یعنی دست برادر رو میره برادرم خیلی آدم حسابی بوده هیچ قصدی چیزی هم مطلقا نداشته اتفاقاً یه روزی یه به نحب، یه نهبی پیش میاد که این میاد تو خونه و این زن چادر بوده سر باز بوده یا چجور بوده که این چشمش میفته به این زن و دلش به این مایل. میشه خیلی سخت از این حطر نارهت میشه پس فردا یک شب بعد بعد یه جلسه خدایا شروع کنیم. هرچند واسه من هر روزه میگیره هر شب خردوار میگیره هر شب. فایده روز به روز این آتش و اش تاریخ شکایت میذاره پیش پیر طریقت. به پیرش میگه چوبالا من یه همچین مسئله‌ای با هم پیدا شده که من تگی راحتام من نمی‌خوام استرس کنم. علاج تو دست یوسف خود نه حسین ارازیه بعد از اینجا سفر کنی به یوزه و مسئله رو به او بگی او درست میکنه این را میافته و را هم دور بوده ایه میاده میره و میرسه به ری سراغ خونه یوسف ابن و میگیره یکی میگه آقا این مرکبه در سخته چیکار تو آدم حسابی به نظره با این چه؟ عرق خوره در سخته چیکار از اون یکی این پرسه از اون یکی این پرسه میگه همه فروش میدن بهش و میگه نه اصلا شما بهتر سراغ خونه نگیرید خار میکرده خار میکرده میاد و پیر میگه خب چیکار کردی؟ میگه والا رفتم اونجا و اینجوری فضیه و هیست که من تو خونه شو نشون نده گفتن اصلا از شما بعیده که تو خونه یه من چه آدمی بود. پیر میگه گفتن بگید علاج دست میده باید باید بری هر کاری کردن نیستی بگید باید راه میده دوره و میاد و باز از مردم میپرسن همون جواب میشنوه و والا یه بهانه‌ای میگه که مثلا فرض کن من یه دینی به این آدم که در سوغته دارم نمیخوام زیر دین این آدم بمونم میخوام برم بهش بدم مثلا یا چیزای از این قبیل رو بالاخره نشون میدن نشون میدن معلوم میشه خونه تو محله بدنام دورش همه خونه هایی هست که محدرات و معزمات اونجا هستن و خودش شیخ هم میونه که اومده نشسته در خونه یه سوراحی یعنی از این تنگای شراب یه <تصفيق> پسر خشکلی هم اونجا نشسته و نشستن صفا کرده. اون باز همیت برگرده این مرد که بچه باز عرق خوره بعدم در مالای آم نمیتونه من بگم باز میره میره سلام میکنه و میگه سلام یا یوسف ابن شما حسین دید. شما هستین میگه بله آقا من هستم الحمد لله میگه والله من شیخ فلان از نیشابور فرستاده فقط من شما میگه خب حالش خوبه هم الحمد میگه خب تو حال چیکار دیدی خب والا من اول از شما بپرسم شما چرا اینجا سکونت کردیم؟ میگه حالا اینجا خونه پدری من از چندین پشت و پیشت و اینا هم نبودن اینجا اخیرا اینا مهاجرت کردن تغییر مکان دیدن اومدن به این طریق و اینجا منم هم اسباب زحمت و هستم ولی خوب هستم من خونه دیگری ندارم نمی کنم این سراهی چیه؟ این سراهی رو یه شب عرق و را بودن به سواله که بودش رو میزرن بگه رو نمیزن روی رو این سراهی رو انگذر بودن دور من ورداشتم و شستم و پاکیزش کردم و تختیرش کردم و آب میکردم، آب کشم میگه این بچه که بگه اینم پسرم قرآن بهش دست میده از میخوی آقا که آدم خوبی آدم اگه این وارستگی تو چرا این کارو میکنی؟ گفت برای این که کسی زنش نهاره به دست هم هم بسکره نیگه به مهده این که دهنه بابادر اومد این سرچون پا پا شد رفت تا گفت گفت بله در حال این ملامتیه یه روشی داشتن و باز در حافظ نه تنها قصه ملامتیه خیلی هست بلکه عده اصلا معتقدن که حافظ ملامتی بوده ولی خب اینا هیچ مسلم نیست با امدادی بود که خودشم قد بود و صوفی بود و از این حرفا یک کتابی هم میشه حافظ شناسی یا الهامات خاجه با اونجا میگه که حافظ ملامتی بوده من فکر نمی کنم حافظ از کن صوفی و با ابزارهایی که حالا در دسترس ما هست مثل این واجه نمای حافظ که خیلی به راحتی میشه نگاه کرد که چند بار کلمه صوفی و ترکیباتش در دیوان حافظ آمده و به چه معانی آمده و بعد می‌بینیم که حتی یک بار اظهار نظر به نفع صوفی نشده حتی یک بار در این سی چل بار که کلمه صوفی آماده نمی‌شه که آدم پیلور صوفیه باشه تو هم پشت بده حالا یه وقت پیر خودش ممکنه به عنوان بدبوی از موریداشت یه چیزایی به شما مثلا پرخوریم شما ها, پرخوری. ها نمی‌دونم پنبلیم امثال این هفته حریصیم نمی‌دونم اما از اول تا آخر یه اونم کسی که خودش که پیر نبوده اینجوری باشه این نشون اینه که رفته و اینا رو دیده و مثل همه اون کسان دیگه و سر خورده ازشون خودچه هم میگه میگه سر به در سومه ها بر کردن چون شناسا چون شناسا حیرت به در م... میکده ها برکردم چون تو در صومه یک پیر نبود که من فکر می کنم اصلا حافظ توپی باشه حالا به هر حال اینا مسائلیست که حافظ شناسا بگن نبنده من اینجا دیوان حافظت یک چیزی اینجا استاد همیشه پوده کی که اونی که از چیزای معلوم تیمی از آنها پرسید آیا اونا این مفصلان دادن جاسوکی نه دیوی که نمیشه که اینگی که نمیشه که این چه معلومتی هست؟ اساس <تصفيق> کار بابار داره وفادار داوطلبون نمیشه نه. اول ام معلومتی هم نداره که از دسته و از پرف و از چیزش، از خودش باد. خودش باد یه کاری کنه که مردم از دونه بسته نه؟ نه اونجا خب بله این غزل درجه یکم بدیم سید نوف بخونه و میگه خطش دوم بلبلز شاخ سرم بلبلز شاخ سرم به گلونگ پخلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسا نمود گل تا از درخت نقطه توحید بشنوید مرغان باب قافیه سنجند و ب즐گو تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی خوش وقت بوریا خوش وقت بوریای گدایی و خواب ام کینعش نیست نیز روزی اورنگ خسرویی جمشید جز حکایت جمع از جهان نبود، زنهار دل مبند در اسباب دنیاوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون ما را بکشت یار و انفاس ای سوی. چشمت به اشوه خانه مردم خراب کرد، مخموریت مباد که خوش ماست می روید. دهگان سال خرده چه خوش گفت با پسر کی نور چشم من به جد از کشته ندره بید ساقیم اگر وظیفه حافظ زیاده داد کاشفده گشت طره دستار مولوی بله اینو دیگه توضیحش همون بیت اول یه نیم ساعت توضیح کرده این است که خیلن پر جلسه